گفتن که سال خمسی که نزدیک میشه وسایل لازمی که داریم و از پسندازمون میخریم ولی احتمال میدیم که این نیتمون فرار از خمسه این کار احتمال نیست که یقین دیگه ولی خدا اجازه داده خدا از آدمای مشتی خیلی خوشش میاد چون خودش چیزی دیگه خداست دیگه عین. سخاوته. سخاوت سخاوتمند نیست عین سخاوت عین رزقه عین قدرت عین نعمت همه نعمت‌ها به دست اوست اینا که مشتری هستن از این چیزا نمی ترسن و حق الله رو حق امام سلام رو مواسه می کنن مالشون برکت پیدا میکنه ابضم میشه خوب خرج میشه